این سریال خیلی جالب است. آیا سریال روزگار غریب را می‌بینی؟ نه، تا کنون این سریال را ندیده ام. موضوعش چیست؟ زندگی دکتر محمد غریب. او یکی از پزشکان معاصر ایرانی بود. گفتی او پزشک معاصر بوده، یعنی اکنون دیگر زنده نیست؟ بله، او در سال 1974 فوت کرده است. قریب متخصص پزشکی کودکان بود. او در خارج از ایران تحصیل کرده است؟ بله، او در تهران دیپلم گرفت و برای تحصیل در رشته پزشکی به فرانسه رفت. آیا او دوباره به ایران بازگشت یا در فرانسه مانده؟ البته که به ایران بازگشت، او پزشکی متعهد و دانشمند بود. او چه کارهای بزرگی انجام داد؟ او پزشکی کودکان در ایران را پایگزاری کرد و یک بیمارستان خصوصی هم داشت. دکتر غریب در دانشگاه هم تدریس می کرد؟ بله، بسیاری از متخصصان کودکان در ایران از شاگردان دکتر محمد غریب هستند.